جمهوری یا دموکراسی یا جامعه مدنی یا حقوق بشر یا آزادی استقلال چنانچه پنداشته میشود یک فرم نیست که انسان که انسان از کشورهای متجدد و مترقی مانند سایر کالاهای صنعتی اقت... وارد کند و مردمان را در این قالبها جا بدهد خواندن چند ورق یا چند کتاب یا اندیشه از چند تا فیلسوف و متفکر خارجی و ستودن آنها و ترویج آنها و اقتباس چند جمله از آنها علت آن نمی شود که این افکار در روان و اندیشه ها و زمیر مردم ریشه پیدا کنند به ویژه که از فلسفه تا تئوری سیاسی راه هاست یک تفکر در فلسفه پیدا می شود بعدش این تفکر دست به دست داده می شود تا به تئوری های سیاسی تا به تئوری های علوم اجتماعی میرسد و ما یک برهی از تئوری های در علوم اجتماعی میگیریم بدونه که این مقدمات تحورات روانی و اجتماعی و فکری در اروپا و قرب را بدانیم اینها را میخواییم ب... ب... بین مردم خود پوری جا بیندازیم و پوری به عمل بیاوریم چنین اندیشه هایی باید بخش اعظم ملت را به جنبش بشتر و آنها را بینگی و آبستان سازد این اندیشه ها هستند که باید در زهدان آفریننده مردمان یا عوام بیفتاد مردم عوام خیلی مهم هستند مسئله تنها یاد کردن و حفظ کردن چند شعار و فرم و چند ایده چند قالب چند سازمان فرم های سازمانی است. که فقط بر سر زبانها آورده شود اندیشه های یک فیلسوف هم هنگامی موثر و کارگزار و جنباننده هست که تنها به عقل و آگاه بود مردم روی نیاورد تنها با عقل یک چیزی را فهمیدن این مسئله در اجتماع مورد عمل قرار نمی گیرد بلکه اندیشه ها هنگامی آفریننده و جنباننده که از, از عقل و آگاه بود بگذارند و به روان و به, به زمیر مردم راه پیدا کنند. خرد در فرهنگ ایران چنین پدیده و چنین مفهومه بود فرق عقل در عربی و در یونان و غرب با خرد در فرهنگ ایران بسیار زیاد است این فرق را اول باید دانست وقتی که ما میخواهیم بر پای خرد بنا غیر از این است که بخوایم بر پایه عقل یا راسیو یا رزون یا فرنوفت بنا کنیم. در فرهنگ ایرانی خرد هایی است که از کل اندام حواس سه انسان از کل تن انسان پیدایش مییابد خرد با کل و مغز نیست خرد در کل تن انسان پخش و پراکنده و زنده هست انسان بنابر فرهنگ ایرانی تنها با کلهش و آگاه بودش نمی اندیشد بلکه با دست و پا و شکم و زیر شکم و دل و جگر و قلبه و ریه و اعصاب و رکهایش می اندیشد خوب توجه کنید خرد به کلیف فرق دارد با مفهوم عقل انسان با همه نیروهای زمیرش با همه نیروهای با حواسش میاندیشد خرد اصاسا زاده از حواس است تن مانند کفش میماند که پا که خرد باشد در تمام آنجا میگیرد این اصل حرکت یعنی خرد در همه تن پخش می شود همه تن با هم حس می کند و می اندیشه. و این بینش حقیقی بینش است. این بینش نه اینه که ما از کله با مغز سرد یک اندیشه بکنیم نه این تمام اجزا و اعضا از شکم گرفتی که فکر حسابی این است که با شکم سر و کار دارد. با دل سر کار دارد، با پا و دست سر کار دارد. از این رو بود که جهان یا جامعه یا ملت در فرهنگ ایرانی ساختاری متناظر با یک تن داشت. خرد که نگهبان زندگی و آراینده و سامونده زندگی است تنها در مغز و کله و عقل و آگاه بود جا نداشت. با آگاه بود تاریخی حل نمی شود با آگاه بود اجتماع مطاله حل نمی شود فقط شاه یا دیکتاتور یا امام یا ولی فقید یا رهبر که این کله هست نمیاندیشد این فرهنگ ایران بود اینها ما کله نداریم بلکه همه جامعه همه ملت همه شهر همه ده و روستا با هم میاندیشند و این اندیشه اندیشه است که از خرد بهمنی ملت یا جامعه میجوشد. این خرد که پیش خرد یا مینوی خرد یا آسان خرد نامیده می شود در همه انسان ها هست مولا و آخون ندارد رهبر بیجه رهبر نیست ویژه پیشوا وی نیست ویژه ولی فقیه نیست ویژه شاه نیست این هم و هم پرسی و هم یا همه افراد ملت این تجربیات همگانی است که قانون و عدالت و حق و نظام و حکومت را می آفرید. ببینید چه اندیشه جرفی هزارها ها پیش در ایران شده است آنها به این پدیده میگفتن آنها به این پدیده چی میگفتن میگفتن که ارتا یا سیمرغ یا هما که اینا همه یک چیز بود از بهمن پیدایش می این اینها به این عبارت این حرف رو میجادم بهمن مجموعه همه خردهای های بنیادی بود و ارتایا چیموریاه هما مجموعه تجربیات مردم, مردم از داد و عدالت و قانون و نظام و نیکی و بدی بود بهمن در ارتا پیدا می شد این معنیش این حرفایی بود که زده شد داد و عدالت و قانون و نظام و نیکی از خرد پیدا شد از خرد بهمنی از خرد همه مردم این بنیاد جمهوری ایرانیست است ارتا یا هما یا تیمورغ فرزند بهمناست اینها اینجور عبارت بندی میکردند مطلب را موقع در تصاویر بنا بیان میکردند اونها در تصاویر میاندیشیدند که لبریز از مفاهیم انتضایی بود به عبارت دیگر قانون و عدالت و حق و ارزشهای نیکی و بدی و حکومت از خرد بنیادی همه مردم پیدایش می شود. پیدا می شود که تخمش در همه انسان ها شده است این بهمن و ارتا تخمشان در هم... یعنی ب... از بهمن ارتا پیدا می شود این در همه مردم در همه نهاد و فطرت همه انسان هست سپس این اندیشه دقیق تر و عمیقتر می‌شود. حالا این رو چه جور بیان میکردم؟ از خرد وقتی قانون و ادارت و, نیکی و بدی پیدایش شد مسئله تمام نمی شود. خرد در هر هنگامی باید از نو بیان از نو در این قوانین و نظام و مفاهیم خیر و شر تجدید نظر کند. چون که این فلسفه ایرانی مسئله هنگام را فوق اهمیت می داد. هنگام فرصت طلبی نیست. هر هنگام بی است هر هنگامی از زمان بی است شما با یک فرمول عمومی سیاسی مک، مثل مکانیکی نیست که در هر موردی به کار برید مفاهم نیکی و رو. کار نیک، کاریش به هنگام این فلسفه ایرانی بوده است خرد در هر هنگامی باید از نو بیاندی شد کسی قرآن جلوه و شما نمیذاشه کپیتال جلوه و شما نمیذاشه این خرد باید خودش در هر هنگام میبیند شد این کتاب رو را ما میتوانیم بخوانیم ولی اندیشیدن کار خود ماست در هنگام حالا این پس این کار باید چی کار کرد؟ این بود که آنها این تصویر بهمن و هما یا بهمن و ارت را چنین عبارت بندی میکردند. که ارتا یا سیمور یا هما که دختر بهمن است یعنی دختر خرد بنیادی با هم ازدواج میکنم یعنی از دید ما بر ضد مذهب اسلام و اینهاست ولی این تصویر بود بهمن با دخترش اینها البته از لحاظ بنیادی درست است برای خاطر که در بون انسان آدم اولیه اگر ما در ذهن فرض کنیم اینها خواهر و برادر هم. با هم ازواج میکنن. بعدش بچه هاشون ها با هم ازدواج میکنن. این می دانید این تصویر اولیه نیست این بهمن آغاز آغاز است غیر از دخترش هم کسی را ندارد این است که از لحاظ تصویری با دخترش ازدواج می کنند. ولی معناش این نبوده است که با شرع اسلام و با شرع دیگری سر کار دارد این اولین اصل دنیا بهمن است از این اولین پیدایش ارتاست که این مادینه تلقی می شود اینها با هم ازدواج می کنند یعنی چی؟ این بهمن با دخترش که قانون اداره ادارت و حق و ارزش معیار ارزش ها باشد دناشوی می کند از جوف شدن و اختران همیشگی خرد با قانون خرد با ادالت خرد با ارزش‌های های حکومت و نظام پیدایش میابد یعنی این انفکاک ناپذیر است همیشه این دوتا بایستی با هم جفت بشوند یعنی خرد هیچگاه با, با یک مفهوم 100 سال 200 سال پیش 500 سال پیش دیگه نمی کند این را همیشه از نوع این خرد در فعالیت هست با مفهوم داد و ادالت با تجربیات ادالت و حق و قانون در روز برخورد میکند از ازدواج اینها چی پیدا میشود حکومت و نظام این ایده را اونها اینجور بیان میکردند. برای ما فوری ذهنیات شرعی اسلامی در ما بیدار میشود میگویم آها این, که این چه عمل است؟ که پدری با با دخترش ازدواج میکنند یعنی فرزند که اق... خر... داد و حق و ارزش باشد با خرد که اصلش، که اصل اینها باشد با هم جفت میشوند با هم اخترام پیدا میکنند این دو اصل در وجود حکومت هیچگاه از هم جداپذیر نیست خرد ملت که تن جامعه باشد دادی می و از اقتران خرد با داد ملت حکومت و نظام پیدایش می آمد خوب در این اندیشه جرب می شوید. آیا این اندیشه غیر از اندیشه جمهوری هست؟ مسئله این نیست که فرهنگ ایرانی جمهوری نبوده است بلکه درست فرهنگ ایرانی ناگذیر و ناچار به تأسیس جمهوری میکشد این اندیشه بهمن هوما هیچ راه منطقی غیر از ایجاد جمهوری ندارم. اما میپرسیم چرا در تاریخ نشد مسئله این است که پس چرا در تاریخ بر ضد این فرهنگ شاهان و سلسله شاهان پدید آمدند؟ این اندیشه را درست این شاهانو سلطانان شاهان که پدید آمدند تا توانستند یا محدود ساختند یا تاریک و ترد و سرکوب کردند چرا چون جامعه ایران غیر از آتن و انگلستان و سوئیش بود که اینها به سرعت یا به سرعت دموکراسی را کشت کردند یا توانستند دوتر از همه دموکراسی و جمهوری را پایدار شد. این کشورها در اثر شرایط جغرافیایی به سختی گرفتنی هستند یا جزیره هستند یا دورشون کوهسارهای بزرگ است اینها امنیت نسبی در جامعه از تهاجمات قبایل دارند ولی ایران همیشه مورد تهاجمات بود این است که دیده می شود در شاهنامه شاهان همه سپهبد بود خانده می شود. مسئله امنیت و تهاجمات همیشگی سبب تأسیس حکومت نظامی شد. همه که ساخدار دیگری حکومت نظامی سپهبد بود و افسر و سرهنگ و سرکیب و سرلشکر و اینها ساختار دیگری بر ضد ساختار جامعه دموکراسی داره این مسئله امروز هم هست چجور ساختار نظامی را که متضاد با ساختار دموکراسی است میشود در یک جامعه داشت اغلب جوامع شرقی که نمیتوانند این دو فاکتور را با هم سازش بدهند ساختار نظامی همیشه ساختار دموکراسی رو منتفی میکنه حالا این در ساختار نظامی مراتب و حاکمیت و تابعیت نقش بنیادی را بازی میکنه و ساختار اهرومی دارد این بزر جمهوری خواهی را که در در تصویر انسانی کاشته شده بود در پرهنگ ایران از رشت و پیدایش این ساختار نظامی سلطنت بازداشت ولی این اندیشه و آرمان به نام شهر خرم باقی موند که در این باره صحبت خواهیم کرد مقصود از شهر خرم جامعه نبود که خورم و شادم. نه شهر خرم یک اصطلاح کاملا حقوقیست جامعی بود که در آن سپاه و شاه، یعنی سپه بود نقشه نداشت یعنی ساختار نظامی نداشت شهر خورم که در شاهنامه اشاره فرامان بداند ای بود که در آن جمهور مردم حکومت می ما باید این تصاویر بهمن و هما یا بهمن و ارتا را که اندیشه های بنیادی و سیاسی ملت ایران را پوشانیدن ژربتر بنگریم. این اندیشه که استوره ضد علمی و ضد عقلی است یک ادعای تنگ نظرانه است که از این جریان در مطالعات آشنایی ندارند در دهانها افتاده است که اسطوره بر علم است. این اصطلاح از قرآن در اذهن افتاده است در شاهنامه و اینها در پرنگ ایران اسم اسوره نمیاد این اصطلاح از قرآن در اذهان ما افتاده است و بار بسیار منفی دارد در قرآن با نام اساطیر اولین مهر کذب و باطل بودن به مطالب و محتویات پیشین خورده می شود فرهنگ ایران یا داستان یا بندهش می گفت داستان که داته است، دات استان باشد یعنی جایگاه زایش و پیدایش بینش بنیادی و تجربی و جایگاه زایش داد یعنی قانون حق و عدالت داستان منشین بود برای این خاطر است که داد داد داستان دادستان شده است و داست هم داستانی و داست دادستان و دادگاه و تمام اینها از کلم این داتا هر دو معنی رو دارد بندهش که بنداتا باشد به معنای است که از بند میروید از فطرت انسان میروید اسطوره های یونان هم سرچشمه بسیاری ان اندیشه های عالی و جرف در قرب شدند و با اصطلاح اسطوره مهر ضد علمی به آنها دادن نشان فقدان بینش علمی است فلسفه اندیشه فلسفه چیست؟ فلسفه اندیشیدن ژرف در مفاهیم است داستان و بنداد و اسطوره اندیشیدن انسان ها در تصاویر است و هیچگاه نمی توان راه فبران اندیشه ها را در این دو گستره خوب خوب تحقیقاتی در همین ده دهه اخیر شده است که خوب نشان می که بزرگترین فلاسفه در یک عبارتشون مثلا در همین عبارت عدورنو یک عبارت را آورده بود که در یک عبارت 15-16 تا تصویر بود یک تفکر فلسفی در یک عمر 16-17 تا تصویر ما فقط زود روی اینها رد می و متوجه این نکات نمی شویم داستان و بنداد و استوره اندیشیدن در تصاویر است هرزه هر نیست فقط شیوه پیدا کردن اندیشه در آنها احتیاج به تفکر دارد احتیاج به تفکر جاینده دارد آدم باید زبان آنها را بداند آدم باید کلید تفکر آنها را پیدا کنند بداند این تصویر را برای چی به کار میبرد و هیچگاه نمیتوان این دو را از هم پاره کرد به ویژه که امروزه در تلویزیون و سینما و نقاشی و مجسم سازی و تاعت بیان اندیشه در تصاویر بخش اعظم زندگی مردم را فرا گرفته است نقش اندیشی صورت اندیشی که سنتز مفهوم و صورت است بنیاد ادبیات ماست یک فکر زنده همیشه با تصویر با هم است تکری که در مردم تأثیر می کند تکریست که با تصویر همیشه با هم ترکیب شده است است که ما در موقعی که با مفاهم خالص صحبت کنیم با عوام از عوام دور میفتیم عوام حق دارن با مطالب رو فهمن چجور میفهمن؟ با تصویر و با مفهوم با هم. نقش اندیشی، صورت اندیشی که سنتز مفهوم و صورت است، بنیاد ادبیات است. هر اندیشه موقعی به روان و زمیر ملت میرسد که صورت بشود. ما ما را نه تنها باید نوشت بلکه ما را باید هم کشید این اشتباه است که ما فقط با مفهوم به سراغ مردم برویم. ملت را از همون تصاویری که در فرهنگش دارد می توان به نوینترین افکار انگیخت. از این تصاویر که ما ناچیز میگیریم اگر جلب بشویم می, می بینیم که جلبترین اندیشه ها در آن است. ملت را از همون تصاویری که در فرهنگش دارد می توان به نوینترین افکار انگیخت تجربیات جرف انسانی تاریخی نمی شود. و در یک برهت تاریخ نمی مانند این تجربه بهمن و را که هزاران سال پیش دورت به خود هر چی خواستند بپوشانند و کنند ولی هیچگاه گذشتنی نیست این مفهوم این در این تصویر یک تجربه فوقلاده زنده است در تاریخ هر چیزی که روی میدهد نمیگذرد ما خیال میکنیم این در جد آسکالان تاریخ می افتاد. نه در تاریخ ما از تاریخ زنده ایم. از تا در تاریخ ما فقط تاریخ کاه دارد باید دید که چیز، چه چیزهای تاریخیست یعنی گذشته است و چه چیزهایی در این تاریخ نیست؟ این شعور لازم دارد این فکر فکر فعال لازم دارد ما در مولوی و عطار و سایر آثار در همین اثوره ها در همین بندهش می توانیم هزاران پکت پیدا کنیم ولی این احتیاج به جرب شدن دارد در تاریخ همه چیزهایی که رو می دهن همه چیزها گذشته نمیشن. ما وارث این ماه های همیشه آفریننده هستیم